که بنده صرفا بدون هیچ ذوق علمی یا عرفانی و بدون هیچ ادعای و اعتمادی که به عکابر و بزرگان خودم دارم طبط های اون عکابر بزرگان رو با هم بگرمشق و مشق و تکرار میکنیم و در حقیقت استاد و شاگرد معنی نداره گوینده و شنونده همه داریم مشق صحبت های اکابر و بزرگان رو میکنیم تا الله سبحانه و تعالی برکت اون اصل این نقالی ما رو و این توتی صفتی ما رو به درگاه خودش قبول بکنیم چون ادنا تشبه و ادنا تقرب به دوستان خدا هم باعث نجاته و باعث فلاحه الحمدلله علمای بزرگواری که در سطح شهرستان هستند و خود شهرستان خاف یک محد علمی هست و در حقیقت میشه گفت که وجود این حوزه و شخصیت مرحوم مولانا, مولانا متحری رحمت الله تعالی و بعد از اون فرزندان برومند اونها چه فرزندان معنوی اونها و شاگردان اونها و چه فرزندان نسبی اونها و در رأس اونها خود حضرت مولانا مایه افتخاری برای کل منطقه هستند و برحال به نوعی میشه گفت که شهرستان های همجوار مدیون علم خودشون رو مدیون این منطقه هستند. بس این عکابر و بزرگان بود که دستور دادن امر کردن و بنده هم بنابرای فرمایش این بزرگواران در خدمت شما هستم امیدوارم که الله سبحانه و تعالی این نشست و این جلسه رو با اس یک تغییر و تحول در بحلی اول در خود گوینده بکنه و بعد از اون برای همه ما و شما و اون چیزی که نیاز ما و نیاز این امت در این برهاز زمان هست الله سبحانه و تعالی اون چیز رو بر قلب ها القا بکنه و اون حکمت و بصیرت رو اللہ نصیب بکنه دوستان شاید سوال وجود بیاد که چرا مصنوی مبنای یک کلاس قرار بگیره و چرا انقدر باید بر روی کتاب و نقل گفته یک بزرگ انقدر باید پافشاری بشه ببینید دوستان در این مبحث افراد و تفریت وجود داره گاهی وقت‌ها ما محبتی و ارادتی نسبت به بعض ها پیدا میکنیم که از او تقدسی درست میکنیم و مقدس معابد درست میکنیم و این محبت به حدی افراتی میشه که از حد اعتدال خودش خارج میشه این بسیار چیز مزمومی هست و چیزی قابل ترک هست ما هر کسی رو برابر حد خودش حتی رسول پاکر صلی اللہ وسلم در مدح من و در توصیف من امقد مبالغه نکنید همونطور که اهل کتاب در شان انبیاء خودشون غلوف کردن من عبد خدا هستم من بنده خدا هستم و این افراد و غلوف کردن در یک شخصیت و شخصیت پرستی چیزی خیلی منفور و مبقوض در مفاهیم دینی ما هست هر انسانی به غیر از انبیا علیه السلام و سلام در او احتمال خطا و نسیان هست اما اکاور و بزرگان خودمون رو اگر از اونها بلفرض خطایی و لغزشی صادر شد ما حق نداریم چون با فران بزرگ محبت داریم از لغزش و هم اتباع بکنیم از خطای و هم اتباع بکنیم البته در خطاها و لغزش های بزرگان ما میاییم و روش احسن رو و روشی بسیار زیبا رو اختیار میکنیم بانوان عنوان مثال حاج امداد الله مکی شیخ المشایخ دارلوم دیوبند یک زمانی کتابی رو نوشتن به حضرت قاسم علوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتایی بانی دارلوم دیوبند دادن گفتن نظر شما در رابطه با این کتاب چیه نگاهی این کتاب رو بکنیم خب شخصیت علمی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی خیلی بالا بود و حاجم دادله مهاجر مکی حتی دروس و وی رو به حد تکمیل نرسنده بود اگرچه که الله سبحانه و تعالی در میدان تسکیه و عرفان به اونها ید طولایی داده بود و بزرگانی و شخصیت‌های برجسته علمی در مکتب تسکیه نفس اونها به کمالات رسیدند اما ایشون کتاب خودشون رو به مولانا قاسم نانوتوی دادن چطور هست مولانا کتاب رو مطالعه کرد چند جای این کتاب دید که یک سری دقزش ها شده یک سری تحقیق بیشتری میخواد خب حالا باید چیکار بکنه اینجا؟ بیفرمند اکیم علامه که زیر این مباحث رو خط کشیدن همون جاهایی که نیاز به تجدید نظر داشت و نیاز به تحقیق بیشتر داشت زیر اینها رو خط کشیدن و بعد اینا رو بردن پیش شیخ خودشون حاجم الله محجر مکی یک شخصیت عرفانی و گفتن من اینا رو نتونستم این مطالبی که زیرشون خط کشیدم، روشون هم خد نکشیدم زیرشون خط کشیدن، من اینها رو خوب درک نکردم، من اینا رو خوب نفهمیدم. شما یک خورده بیشتر در رابطه با اینا من رو توجی بکنید و از علمای دیگه میخواد سوال بکنید. بعد حاجی مودل مهاجر مکی رحمت الله تعالی متوجه شد که تو این چند مورد نیاز به تحقیق بیشتری بوده و نیاز به تجدید نظر هست. این روش عکابر با بزرگان ما بود. که اگر بالفرض ما با یک شخصیت محبت داریم ما با یک شخصیت ارادت داریم این به این معنا نیست که وقتی به ما گفته میشه حکم خدا اینه ما بگیم حکم فلانی اینه اتخذوا و هم و رحبانه هم من دون الله این در تحت این آیه داخل میشه عرباب من دون الله هیچ کس در حدی حد نیست که حکم او و فیصله او برابر به خدا و رسول بشه سه چیزه محبت ارادت محبت عظمت و اطاعت ما اون, مح... ما اون محبتی که با خدا داریم حق نداریم با غیر خدا داشته باشیم و این محبت نباید محبت افراطی بشه در حدی که تبدیل به تقدس گرایی بشه این محبت نباید به حدی برسه که ما یک شخصیت رو در حد تشریع و قانونگذاری او رو پرستش بکنیم هر حلالی رو برای ما حرام کنه هر حرامی رو برای ما حلال بکنه چون ما باش مخبت داریم چون مسلم و مربی ما هست این غلطه اطاعت نباید برابر با خدا باشه بله ما اکابر بزرگان خودمون رو قبول داریم اطاعتشون رو میکنیم اما اگر بل در یک مسئله از اونها لغزشی صحوان صادر شد به گفته امام ابو حنیفه اگر اگر بالفرض والمحال گفته من رو جایی مخالف با قرآن حدیث دید به دیوار بزنیم ما لازم نیست که اطاعتی در حد خدا و رسول از ما الله داشته باشم هر کی میخواد باش بر همین الله سبحانه و تعالی میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم الله و رسول شخصیت الله و رسول در مقامی هستند که اطاعت مستقلی دارن با هر کدوم برای ایناها اطاعت مستقلی آمده اطاعت خدا مستقل اطاعت رسول مستقل اطیع الله و اطیع رسول اما من اطاعت مستقلی نداره وقتی ازش اطاعت میکنیم که مطابق با حکم الله و رسول بگه در رابطه با عکابر و بزرگان خودمون ما این دیدگاه رو داریم که نه محبت افراتی نسبت به اونها داریم و نه خدای نکرده بیهرمتی و توهین و جسارت نسبت به این شخصیت ها میکنیم نه از اونها یک شخصیت های مقدس معاب درست میکنیم و در حد تقدس اونها رو میرسونیم و نه اینکه که خدای نکرده خردگیری و سوئزن نسبت به و بدگمانی نسبت به عکابر و دوستان خدا پیدا میکنیم این حد وسط هست حد اعتدال هست من عادلی ولین فقط آدن تو الحرب خدا با هیچ گناهی اعلان جنگ نکرده مگر یکی سو و با گناه دوم این که انسان دل یک دوست خدا رو برنجوه اینجا اعلان جنگ میشه مستقیم اصلا منعم علیهم مئیار سراط مستقیم هست مستقیم رو هر کس خودش با فهم ناقص خودش از قرآن نمیتونه کسب بکنه برای همین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اگر صراط مستقیم رو میخواهی صراط منعم علیهم زمان خودت رو پیدا کن الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين راه اینا رو راه صدیقین راه صالحین راه شهدا راه انبیا این راه ها تو به خدا میرسن اینا مستقيمه اینجا گفته نشد اهدنا الصراط المستقيم صراط الدين چون برداشت ها از دین متفاوته هر طیفی هر گروهی هر طائفی فکر میکنه من دین دارم اما معیار دین درست اینه که ما خودمون رو با کی محک بزنیم با منعم علیهم معیار ببینید اینجا گفته شده احدا سراط المستقیم صراط القرآن بدل مبدل منهوه هست اینجا ما نمیتونیم ادعا بکنیم که من سراط مستقیم دارم و چرا چون برداشت من از قرآن اینه هر ای در طول تاریخ آمده یک برداشتی، یک توجیهی، یک تعویلی از قرآن داشته خوارجم آیه از قرآن داشته اولین گروهی که قرآن رو تفسیر رو به رعی کرد و رخنی بزرگی در این امت ایجاد کرد و این امت تکه تکه و پاش باش کرد مانعین زکان در زمان عبو بکر هم برداشتی از قرآن داشتن آیای قرآن رو توجیه تعویل میکردن اصلا شگرد اهل باطل اینه که در هر زمان با لباس دین به جنگ دین میان و باطل خودشون رو همیشه میگیرن آرایش قرآنی و حدیثی میکنن با سفستگری و عوام میخوان باطل خودشون رو در ما بین ها جا بده برای همین خدا وقتی میخواد صراط مستقیم رو به ما معرفی میگه قرآن دلوجوه قرآن هر کس میتونه بیاد و به جای اینکه خودش رو در قالب قرآن بریزه و شکل قرآنی بگیره خواهشات نفسانی خودش رو قرآن رو در قالب خواهشات نفسانی خودش بریزه و باطل خودش رو آرایش قرآنی و حدیثی بکنه و بخورد جامعه بده سرات مستقیم رو میخوای بشناسی اینا رو باید بشناسی ببینید یک عبد بودن قرآن از اینا خواست و اذا قيل لهم آمِنوا كما آمن الناس قرآن به اینا گفت آقا ایمان میخواد بیارید مثل این صحابه ایمان بیارید مردم اون زمان صحابه بودن میگه ایمان بیارید مثل ایمان اینا بیارید رجال معرفی کرد من ایمانی میخوام مثل این رجال مثل این مردان مثل این صحابه اونا چی گفتن اونا با خودشون گفتن که کم آمن امن الصفا راه این مقبولین رو راه این مردان رو که خدا اینها رو بر اینها سعه گذاشته و اینها رو معیار معرفی کرده برای صراط و مستقیم و برای ایمان راه اینها رو سفاحت انا اجازه فهمیدن قرآن چی میگه الا حرف تأکید انهم این نحرث تاکید هم الصفها خون باز برای تاکید الا ان هم هم الصفها ولا كلا يشعر اگر احمقی تو دنیا وجود داره همینان با چن تو تاکید الا تاکید ان تاکید هم دو بار برای تاکید اینا احمقا احمقا احمقا احمقا چرا چون حاضر نیستن بر اون میاری که خدا برای صراط مستقیم تعیین کرده اینو گام زن بشن معیار همینه را همینه تو خودت میخوای قرآن رو توجیه تعبیر بکنی خودت برای خودت راه درست بکنی خودت برای خودت مسیر درست بکنی سرات مستقیم سرات این مردانه سرات مستقیم سرات منعم علیهمه میخوای تو این مسیر گامزن بشی و حرکت بکنی بر همین بود رسول پاک علیه و فرمودن علیکم به سنتی و سنت خلفاء راشدین قدرت عمر روزی که به خلافت رسید گفت من بر نقش قدم نبی حرکت می کنم و ابوبکر صدیق نگفت که من عمرم حالا دیگه من خودم هر طور خواستم مسیر و راهی رو انتخاب می افتخارش به این بود که بر نقش قدم اونها حرکت بکنه امام مالک میگه اینایی که زنده هستن از فتنه ها مسنون و محفوظ نیستن بر نقش قدم مقبولین حرکت بکنید صالحین سلف صالحین حرکت بکنید اگر میخواد به صراط مستقیم برسید تازه به دوران رسیده هایی که قرآن دست گرفتن تازه به دوران رسیده هایی که از پیش خودشون دارن قرآن رو توجیه و تعویل می و خودشون تفسیر به رعی میکنن و هر طوری که میخوان مفاهیم عرفانی رو با هر توجیه و تعویل به خورد جامعه می دن دنبال اینا نیفتید هیچ زمانتی برای سرات مستقیم اینا وجود نداره. قرآن رو میخوای بشناسی با این انسان ها بهش ببینید برای همینه که الله سبحانه و تعالی در کنار کتاب الله رجال الله میفرسته شده خدا رجال الله بفرسته کتاب الله نفرسته سال هزار پهمبر اومده شده الله سبحانه و تعالی رجال بفرسته کتاب نفرسته اما نشده که خدا چه کار بکنه؟ کتاب بفرسته بدون رجال و بگه خودتون عمل کنید این کتاب کتاب رو با رجال بشناسید در کنار کتاب رجالی رو خدا میفرستاد کان خلقه و القرآن که نمونه عملی از قرآن بودن هر کس می اون چیزی که تو قرآن عملا ببینه میرفت سراغ رسول پاک رای سراسا عملا تو وجود رسول پاک می دید. اون کسایی که خواستن قرآن رو بدون مصلح و مربی و بدون کارشناس ها و انسانهای لایق بشناسن دال شدن و مدل شدن اونهایی که خواستن صراط و مستقیم رو بدون منعم علیهم بشناسن یا گرفتار مقدوب علیهم شدن یا گرفتار دالین شدن از افراد و تفریت اینا نتونستم خودشون حفاظت بکارم برای همینه که امروز ما بر این رجال و بر این شخصیت های دینی خودمون داریم چگار میکنیم بر حرکت اونها و بر منهج اونها داریم اختدا میکنیم و سعی میکنیم خودم رو این نزدیک بکنیم اینم خیلی غلطه گفتیم اول صحبت خدمت دوستان که ما از افرادی که اونها رو الٰوی یافته میدونیم از افرادی که اونها رو معیار صراط مستقیم میدونیم به حدی به به حد فرسش اینو غلط تو خطاهاشون تو لغزشاشون تو بالاخره انسانه هر انسانی غیر از انویار علیه الصلاۃ و السلام از خطا و از نسیان محفوظ نیست ما بیایم بگیم چون فلانی رو دوست داریم خطاهاش هم دوست داریم لغزشاش هم دوست داریم و اگر یک جایی بالاخره یک تساهلی هم از شد دنبال او هم میفتیم نه خیلی؟ ما دنبال این میفتیم. بعضی افراد هستن هر نوع تأثی و هر نوع تأثیر از اکابر و بزرگان رو شخصیت گراهی میفهمن این غلطه چرا آقا به گفتهای بزرگان به ملفوظات بزرگان شما این قطع پافشاری میکنید تو جلساتون میاد بگید فلان بزرگ چنینگو فلان بزرگ چنینگو فلان بزرگ چنینگو آخه ببین الله سبحانه و تعالی یک سوره قرآن رو اختصاص داده به چی؟ به یک بنده حکیم خودش به نام لقمان گفتهای بنده خودش رو خدا داره برای من بیان میکنه چرا؟ به من تو به اهل حکمت رو محکم بگیر این رجال رو بچسب این اینا چیزی خارج از قرآن نیست و چیزی خارج از سراط مستقیم نیست خدا داره این مسیر رو نشون میده اره همینه که دوستان من ما بلاخره سراغ اینا رو مقدمتا ما گفتیم برای یک گشایش ذهنی و فکری من خدمت مولانا قیستانیم گفتم جلسه اول رو معمولا هر جا که هست ما استساس میدیم به این مباحث مقدماتی تا دوستان کم گشایش ذهنی و فکری براشون بشه به چه نیت سراغ مصنوی میاییم و چرا شیفته اشعار مصنوی شدیم هر کس از زن خود شدیار من و از درون من نجست اسرار من برای اینکه ما به اون اسراری که مولانا میگه انشاءالله با توجه به تشریحات حکیم علوم تانوی در کلیب مصنوی که مبنا بیشتر کلاس ما بر همین کتاب هست بتونیم با یک شناخت کاملتر سراق این مسنوی بیام بدونیم چیه خب امروز با گراش های مختلف با طرز تفکرهای مختلف سراق مسنوی آمدن هرکی به نوعی اما این ما بتونیم انشالله انشالله با اعتمادی که بر عکاوه بزرگان خودمون داریم نقالی صحبت های بزرگان رو بکنیم و ان بتونیم این جلسه و این نقل صحبت های بزرگان برای ما مفید باشه خوبه که این مباحث گفته بشه دوستان من مولانا از اون شخصیت‌هایی هست که الله سبحانه و تعالی شخصیت‌های متشرع و شخصیت‌هایی که بر همه حد و حدود شرعی کاملا محکم بوده و خودش قبل از اینکه تحولی در زندگیش بیاد به وسیل شمس تبریزی به تمام علوم حوزوی زمان خودش مسلط کامل بوده در تمام علوم معقول و منقول چیر دستی و معارد کامل داشت. عرفن یعلم هم و همون کتاب و حکمه الله سبحانه و تعالی به این شخصیت ید طولایی داده بود اما بعد از اینکه با شمس تبریزی ملاقاتی کرد که قصه مفصل هست از اون به بعد فقه باطن رو هم خدا نصیبه او کرد به تعبیر علام ندوی فقه باطن یعنی یوزکی هم تسکیه نفس او چیزه اکابر بزرگان ما رو اینا خیلی تأکید دارن گذشته های دور مفاهیم عوض شده اصطلاحات عوض شده ولی این حقیقت خود تو صدر اسلام هم بوده تو صدر اسلام میگفتن تعلیم و تسکیه یعلم همون کتاب وله حکم یکم جلوتر آمدیم تو صده های بعدی گفتن شریعت طریقت یکم جلوتر آمدیم اصطلاح رو عوض کردن گفتن علم ذکر مولانا الیاس رحمت الله یکی از اصول خودش رو گذاشتیم یکی از اهمترین اصول خودش رو که مولانا محمد منظور نومانی هم ملفوزات مولان الیاس رو جمعواری کرده دوستانتان مطالعه کردن که در روزهای آخر عمر خودشون مولانا بی نهایت با یک دقدقی با یک پریشانی خاطری تأکید میکرن رو این دوچه چیست علم ذکر علم ذکر علم بدون ذکر دوستان من یک تعییش فکریه یک تفننه یک ورزش فکریه علم بدون ذکر یک فن و این فن رو گای یک فاسق هم میتونه به دست بیاره گای یک مستشرق هم میتونه این به دست بیاره در رابطه با علوم و فنون مسلمان ها بیاد و خیلی معلومات دینی و اطلاعات یک خابرشناس یک اسلامشناس اینا رو به دست بیاره این میگه فن اصلا علم و ذکر اینا نمیشه اینا رو از هم جدا کرد اینا با هم برای همین خدا میگه فسلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون مخاطبین میگن اینجا مراد از اهل ذکر کی هستن اهل علم خود چرا مستقیم خدا نگو فسلو اهل علم؟ به خاطر این که به من و تو چی که علم لازمه علم ذکره هر عالمی زاکر هر ذاکری عالم این اصلا چیزایی نیست که از هم بشه اینا رو جدا کرد علم بدون ذکر یک فنه یک تعیش فکریه یک تفننه یک ورزش فکریه اما ذکر بدون علم الهازه زنده قص رکره اسم دیگه ای هم نذاره شاید اینا رو, اینا رو خیلی رک و خیلی واضح به شما نگفته باشن در لفافه کنایه ولی من همون چیزی که آخر باید بگی همون رو میگم ذکر بدون علم چی به بار میاره؟ الهاد به بار میاره، زندقه به بار میاره. حکیم عمرانی رحمت الله تعالی میگه یک درویش عابدی رفت و قاری ذکر بکنه و برای خودش به قول معروف مقامات عرفانی رو طی بکنه. عالم نیست، علم نداره. در حد حلال و حرام، جایز و ناجایز چیزایی نمیفهمه. بعضی یک مدتی رفتن، گفتن آقا ببینیم و کجا رسیدیم، خبر ازش بگیریم. بعد مدتی رفتن پیشش دیدن آقا بالاخره همون طور ذرا عبادت میکنه خیلی با یک حالتی با یک ولایی با یک اشتیاقی داره خدا رو یاد میکنه این ای که رسیدن دهانه قاری یک مرتبه وحشت زده شدن زوزه گرگ و صدای درنده و همه چیز اینجا شنیده میشه حتی خدای چطور این نیمه شب اینجا ما یک شب آمدیم وحشت وجود ما رو گرفته رفتم پیش این جناب آبد و جناب بقول معرو صوفیه بدون علم بهش گفتم جناب نمی ترسی این صداها این تاریکی این ظلمت این موقع شب تنها گفت جناب من از خدا نمی ترسم از اینا که جای خود تم واح, واح. چقدر ماشالله این رشد کرده اللازر فانی علم بدون ذکر انسان رو به اینجا می رسه برای همین در یک روایت رسول باقیلی صلی اللہ میگه وسلم میگه وصاب الوساویس قلبی خشیتک و ذکر خدای و ساویس قلب من رو اول خشیت کن بعد چیتان؟ ذکر کن ذکری که توش خشیت نباشه و خشیت لازمه علمه انما یخش الله من عباد حلم ذکری که بدون خشیت علم باشه الحاد میاره زندقی میاره هایی که در دین آمده شما فکر میکنید به خاطر چی آمده بدعت در دین آمده از فرت محبت بدون علم من رسول رو دوست دارم دست به هر کار زده دست به هر ابراز محبتی زده حالا نیامده ببینه این ابراز و محبت تو چارچوب شریعت هست یا نیست این صحابه این کار رو کردن یا نکردن با قرآن حدیث مطابقت داره یا نداره اینا رو نمیداره چون من عاشق نبی هستم چه میکنم و چرا نمی آخر سر آقا بدعت گذاری در دین شروع کرده آقا من حجر الاسود و دوست دارم عاشق حجر الاسودم خب باش اما روز عرفات که شد حجر الاسود ول کنیم اگه بچسبی به اینو، بچسبی به ملتزم و بچسبی به فرده خانه کعبه و بچسبی به چشمه زمزم اینا رو خدا این روز ازت نمیخواد این روز خدا ازت عرفات میخواد تو هر موقعیت خدا ازت چی میخواد فرد محبت تو و تنها یک احساس تو دین به درد نمیخوره این احساس و این ولوله محبت باید توش خشیت علمش اگر توش خشیت علم نبود از انسان خدایی نکرده دور از زمع ما الهاد و زندقه به وجود میاره در وجود انسان برای همین رسول پاک تو این تعالیم روح بخشش با این دریای بلاغتش چطور مفاهیمی رو داره به ما درس میده اللهم اجل و اول چی بگید خشیت بعد ذکر علم ذکر علم ذکر علاوه بر هم باشه تعلیم تسکیه طریقت دیگه شریعت بعضی افراد هستن صوفیای جاهل میگن آقا مولانا گفته ما از قرآن مغز را برداشتیم پوست را پیش خسان انداختیم ماشاءالله بعد خودش توجیه میکنه خودش تعویل میکنه بدونی که بفهمه حقیقت گفته مولانا چیه مولانا در فیه مافی همین مطلب رو توضیح میده خود مولانا این رو تشریح میکنه این که من گفتم مقض شریعت و باطن شریعت به این معنا نیست که ظاهر شریعت رو تو ویل کنی مثل اینه که آقا مردی رو بیاره بعد بگه حقیقت این تخم مرگ پوستش که نیست پوست رو من بیندزم بیرون پیش خسان به کار میکنم؟ بگی؟ زرده و سفیده که یکی جوجه میشه و یکی قضایی جوجه میشه اینا رو میذارم زیر مرغ. بشین آقا بعد از چهل روز چه میبینه به شما؟ بگی؟ رسوائی اینو خودشو مذهکه خاص آم میکنه آقا حقیقت پوست گردوه یا مغز گردو؟ بگی؟ مغز گردوه خب من پوستشو میکنم؟ اصلشو زیر زمین دفن میکنم منتظرم جوانه بیاد بیرون انشاءالله چند سال بعد در میاد؟ پوس را کجا انداختم؟ ها؟ پیش خسان انداختم جناب حد و مرز شریعی رو تو نمیشناسی این که مولانا گفته پوس را من پیش خسان انداختم به این معنی نیست که دیگه ظاهر شریعتو رو کن شریعت دیگه ظاهری نمیخواد همون مقض شریعت رو بگیر آقا چرا نماز نمیخونی اقین السلاو تل ذکری در کار اهل الله دخالت نکنید باعث محرومیت هست من نمازمو بیت الله میخونم خب قضاتم هم اونجا بخور موقع قضا خوردن میشه به هیچ موریدی مجال نمیده و دو برابر همه میخوره موقع نماز که میشه جناب تو صف نیست کجایی نماز اونجا بخوره نمازم همونطور که نماز اونجا یک برکتی داره یک معنویتی داره, داره خب خوراک اونجا هم یک معنویتی داره یک برکتی داره خوراک داره اونجا بخورجنا پیرسایی بود همیشه ادعا میگن علم کان ما یکون من دارم از همه چیز خبر دارم بس قیب میگم زنها گای اوقات بالاخره به درد میخوره همون این نکیده کن عظیم همون کیدشون و همون به قول معروف دستیسه هاشون گویاقات مثبتم میشه به نفع دینم هم میشه همسرش اینو قبول نداشت چی میگه این مگه میشه نبی ما غذای مسموم رو خورد بعد بعد از اینکه تو دهن گذاش با وحی اطلاع پیدا کرد که چی این لقمه مسموم رو گذاش بیرون یک صحابه هم اونجا شهید شد خود رسول پاک اثر سم به بدنش سرایت کرد یک سردردی تا آخر عمر رسول پاک علیه الصلاه السلام داشت چطور شد رسول پاک علم کانو مایکون نداشت بقیه آقا میگه علم من علم کانو, مای... کانو مایکون دارم از همه چیز خبر دارم این دروق زنش میگون مرد بیچاره گل خورده بود فکر میگه نه آقا همینطور هست یک روزی زنه گفت من حالا ارادتمند شدم قبول کردم سلمنا چون عوام ناس یک هایهوها و یک سرسده ها و یک به قول معروف تردستی ها و شوبد بازی ها و اینا رو معیار ولایت فهم اگر اینا بود خوبه اگر اینا نبود جایی دیگه که دکان تقوا باشه بگه گفته مولانا و دکان وحدت باشه و توحید باشه ایجاد دو دور نمیزنه جایی که با نفس مبارزه بشه با رضایل باطنی مبارزه بشه جایی که نفس رو پا پامال بکنن و برای نفس سخت باشه بعضی چیزا ایجاد دو دور نمیزنه این زنگو خلق من حالا من شدم شیخ تو یک شبو میاد اینجا ببینم علم قبط چطور بلده آمد قضاها رو کشید و برا همه برنج و گوش گذاشت گوشتا رو رو پیر پیرسایب رو بشقاب بزرگتری براش گذاشت برنج براش کشید بعد همه قضاها رو داد خب ماریدها شروع کردن بسم الله گوشتای خوبی و گذاشته شروع کردن بخوردن هم همونطور نشسته دست رو دست گذاشته چون برنج هست و زارنگ گوش نیست حتما من میخوان سپرایز کنن و غذای مخصوص برا من بیارن گوشتی با قول مروح غنی شده و مرتب اما هر چی نشستید خبری نیست آخر صدا کرد آی مورید نلق آمد همه دارم میخوارم من دارم بره بره دارم نگاه میکنم بینم گوشت من کو او شد زن ضربه نایش زد گفت جناب تو که علم کانو ما یکون داری چار نخونزی رو برنجاد گوشت از همه رو رو گذاشتم گوشته شنا. از تو رو کجا گذاشتم زیر چار ناخون گوشته چطور تو که از گذشته و حال آینده از همه خبر داره همین چار ناخون زیره به نجات گوشته نمیبینی پرید نکنه بود غذا خیلی نشد کرد نه حالا ببینید این سفشتگری ها و این عوام فریبی ها عمومن هست گفتیم پریغت بدون شریعت الهاده زندقه است بیرینیه تجربیه بدون رو دروستی ما این رو میگیم البته ببینید در قرآن دو جا الله سبحانه و تعالی حالا یک جا میگه یزکیهم و یعلمهم الكتاب و الحکمه یک جا دیگه بعد میگه یعلمهم الكتاب و الحکمه و یزکیهم یک جا تسکیه مقدم تعلیم و تعلم معخر یک جا تعلیم و تعلم مقدم بعد تسکیشی معاخر برای اینکه به ما شما بفهمونه اگر عالمی ذاکر باش اگر ذاکری عالم باش حضرت حکیم علامه تحانوی رحمت الله تعالی همیشه بستور میدادن در کنار مرکزهای اصلاحی و تربیتی یا اصلاح قدیم در کنار ها همیشه حوزه علمیه باشه چرا؟ چون ذکر با علم همگام بشه و این ذکر با مسند ذاکرین موروسی نشی. نالایقا به این منصب نشینن. اهل علم همیشه افراد و تفرید ها رو تعادل میکنن. برای همین هر جا مراکز اصلاحی و تربیتی یا به اصلاح قدیم خانقاه های حکیم العلماء در حالام هست در هند و پاکستان و کشورهای مختلف در کنارشون چیه؟ بگید. زلمی است. اون پیر که تو جلسش داره با ترفندها و با یک توتعه ها مردم رو از علما دور میکنه و بدبینی نسبت به علم و علم ایجاد میکنه اول باید چیکار کنی؟ اول بفهمی که چی؟ این مورد داره پیرسایبی که میبینی علمای ربانی و حقانی نسبت به او سو زن دارن و در جلسات او شرکت نمی کنن. نشانه چیه؟ که این ذکر داره چی نداره؟ علم نداره این خیلی خطرناکه و چی شد؟ یه قایده کلی من میگم برای همیشه انشالله برای ما باشه چون خیلی وقتا از این جلسات مصنوی رو ما میذاریم بعد خیلی دوستان درشون طلب پیدا میشه انگیزه پیدا میشه بعدها میشنمیم که ای بسا ابلیس آدم روی هست پس بر هر دستی نشاید داد دست دست دادن به یک جایی که نباید میداده یک زمانی یک جوانی از کردستان اومده بود خدمت مولانا محمد عمر سربازی اصمت الله علیه تو اتاق بود و این بیچاره خیلی ضربه طریقت ها و عرفان های کاذب رو خورده بود و این پیرهای دقل رو بیچاره بس واس پیدا کرده بود ناراحتی اصاب پیدا کرده بود ناراحتی جسمانی پیدا کرده بود بعد گفت که من یک سری سوالات دارم قبل از اینکه به مولانا تعلق اصلاحی بر قرار کارم باید تحقیق بکنم که واقعاً اونی که دنبالش هستم هست یا نیست مولانا از بعض نماز از تشریف یوردن از مسجد من گفتن خود مولانا سوال کن مولانا از مسجد تشریف یوردن بیرون این رفت و گفت مولانا من اومدم با شما بیعت کنم ولی میخوام روک با شما حرف بزنم اونا گفت بفرمایید گفت که میخوام با شما بیعت کنم مولانا گفت خیلی خوب فلان ساعت فلان روز تشریف بیارید جلسه هست اونجا میتونید با من تعلق اصلاحی برقرار کن کمرونو منو سر کار نذاریام ایطور منو سر کار نذارین واقعا چیزی بادت هست یا نیست ای عزبی الله مورد خدای این چنطور حرف میزنید مولانا یک مرتبه تابسمی زادرو بهش نگاه کردم چی میگی شما؟ به خدا به من گفتم پیاز پشت چشمات بزن تا صبح نمیدونم نخواب چقدر این کار بکن چقدر اون کار بکن پاس انفاس کن نمیدونم فلان کن فلان کن یادداشت کن و چنین کن و چنان کن آخر سرم جز ناراحتیای های روحی روانی جسمی هیچی دیگه آیدم نشد واقعا اگه چیزی داری بگو که باید کنم اگر نه منو سر کار نذار خوشم <تصفيق> بعد ببین من انشاءالله تعالی میگم که اینجا کار دیگه ما نکنیم تو رو به شریعت محکم میکنیم عمل بر حکمای شریعت برای تو آسان و لذت بخش میشه انشاءالله حرف معصیت برای تو طبیعت ثانویه میشه اصلاً جزء وجودت میشه انشاءالله همینو همین ما بهت قول میدیم اگر دنبال تردستی و چش بندی و دنبال جنگیری و دنبال نمیدورم این تسخیر عجنه و فلان و فلان و فلان هستید برو دکان دیگه برو جای دیگه اینا این چیزایی که امروز لوازم کمال فهمیده میشه لوازم بزرگی فهمیده میشه فلان کار شوبدبازی رو میکن فلان کار تردستی رو میکنه تمام دیگه بزرگه دیگه حکیم علما ثانوی در ابتدای کلید مسنوی می یکی با اونها میخواست تعلق اصلابی برقرار کنه که ببین اگر آمدی و این رمالی ها و چش بندی ها و این خدمت شمر شد کارهای عجیب قریب از من ببینیم من از اینا خالی هم. همه به من میگن صوفی خوشک خود حکیبالامه ابتدای کلید مصنوی رو نویسه همه به من میگن صوفی خوشک و من احکام شریعت رو و حد مرز شریعی رو فدای شتیات سوفیانه نمی کنم. و صد تا این شتیات سوفیانه رو فدای یک حکم قدام می کنم شریعت طریقت خادم شریعت، طریقت چیه؟ خادم شریعت بازم میگم. گم طریقت چیه؟ خادم شریعت، طریقت آمده در توی قوتی پیدا بشه ترک معصیت رو برای آسان بکنه اجرای امر خدا رو برای تو لذت بخش بکنه شیرین بکنه اون رو به یک صفای باتون به یک تسکیه برسونه به یک عشقی برسونه که فدا شدن برای هر حکم خدا برات آسان بشه این حاصل تسکیه است این حاصل طریقته کسی به این رسید به منزل رسیده دومال چیز دیگه نه باشیم حال منم با همین گفته که کلید مصنوی ابتدای مصنوی حکیب علامه تانوی فرموده منم خدمت دوستان میگم که مبنای کلاس ما انشالله مصنوی هست و بعد از مصنوی هم اعتماد ما و وثوق ما برچیه؟ شرحیه که حکیم رحمت ثانیوی رحمت الله تعالی نوشته به عنوان کلید مصنوی در ندای اسلامم شماره شماره داره چاپ میشه دوستایی که پیگیر هستند داره ترجمه میشه ترجمه بسیار عالی و قشنگی هست علامه اقبال رحمت الله تعالی میگه من هم در شرح مصنوی به قدم‌های حکیم الامم مولانا اشرفیه ثانیوی رحمت الله تعالی اقتدا کردم حتی علامه اقبال رحمت الله تعالی هم این رجوز شروعات شروحات معتبر و از این متاثر بودن از کلید مصنوی. خوبی اینه که در کلید مثلاوی هر جایی که احتمال یک شبهه و یک غلط فهمی برای مخاطب وجود داره کاملا مسئله رو بست میده مولانا و طوری آن فهم میکنه که برای هیچ کسی جای ابهامی و جای انحرافی باقی نمانه اینا مباحث اولیه بود دوستان من اگر کسی اینجا انشاءالله منم این نیت رو میکنم جلسه اول شما می این نیت رو بکنید. آمدیم تا عوض بشیم آمدیم تا تغییر کنیم. اومدیم تا متحول بشیم ان شاء الله نه اومدیم تنها ادبیات فارسی مونو درس کنیم قصه خوانی یاد بگیریم نه اومدیم به قول معروف تنها مصنوی خان بشیم نه اومدیم تنها مصنوی پژوه بشیم نه اومدیم تنها مولانا شناس بشیم نه اومدیم تنها قیل و قال یاد بگیریم استلهات عرفانی یاد بگیریم و با سواد بشیم تنها آمدیم چی بشیم با فیض بشیم با سواد میگن میدونید سواد یعنی چی سواد این یعنی سیاهی برشی میگفتن باسواد چون سیایی کتاب رو یاد گرفته سیایی نقوش کتاب رو یاد گرفته باشی میگفتن باسواد اما هر باسوادی بافیز نیست ما نه تنها باسواد بشیم آمدیم چی بشیم بافیز بشیم نه آمدیم تنها اسطلاحات ارفانیات بگیریم و رو سنگین کنیم یک فن به مسنوی به عنوان یک فن نگاه نکنیم مسنوی نقشه گنجه کنتو ک یک نقشه گنجه اما دوستان من ببینید به نظر شما علامه ندوی رحمت الله تعالی علی میگه کتاب‌ها علامت‌ها هستن نقشه‌ها هستن اما اگر می‌خوای یک روح متحرک و یک روح پر حرارت داشته باشی هیجانی داشته باشی بتونی تو این مسیر حرکت بکنی نیاز به نفوس زنده داری نیاز به مردان حق داری علمای ربانی رو بشناسیم، در جلساتشون شرکت بکنیم. و از راهکارهای اصلاحی که اونها در مراحل مختلف تسکیه نفس میگن بحرمند بشیم. تو میدان عمل بیاییم. یک زمانی در یکی از حوزها تعریف میگردن یکی از علما که طالب علمی رو آورده بودن یکم سادلوه بودی میچره. بعد خبر دادن به محتمیمین حوزه به روحسای حوزه که آقا نماز نمیخوانه. دنیا نشی. چطور تا طلبه لایم میگه نماز نمیخونه بعد طلبه ها رو گفتن صبح بیدارش کنید بیاد دو مرتبه گفتن صبح بیدارش هم میکنیم آقا گوشش به کار نیست نماز نمیخونه یک روز رئیس حوزه خودش آمد و اینو بیدار کرد میگه این واقعیتیه یه طلبه یکم ساده لو رئیس حوزه میگه دو مرتبه بیدارش کرد یکی از طلبه ها گفت رئیس رئیس مولانا فلانیه بعد گفت که باشه بعد این رئیس گفت باشه نمیخوای نماز بخانی؟ گفت نه یعنی شید چطور طالب الالبی که نماز نمیخوای بخانی؟ طالب شدم درس بخانم طالب نشدم نماز بخانم سبحان الله خیلی استادلال قشنگی کردی شما بعد آقا رو گرفتن از پرتش کردم بیرون حالا آقا میبینی پنج سال شش سال دور از جمعیمان مصنوی خان هست اما نماز نیست جنا؟ چند سال مصنبی میخوانی؟ انو نماز خان نشودی تو من مصنبی میخوانم نماز این میخوانم مصنبی رو بهش چی میخوانی؟ در <تصفح> رابطه با عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی و حضرت عثمان رضی الله تعالی در روایت میاد که این دو شخصیت بزرگوار ده آیه از قرآن رو یاد نمیگرفتن مگر این که بهش عمل میکردن بعد میامدن پیش رسول پاک درس جدید میگرفتن آمدن پی خب حرکت دوات و تبلیغ تعولی در دنیا آورد به خاطر چی که تنها توری پردازی و تنها خدمت شما هر در حد گلوغال نبود عملی هر چیز عملی هر چیز عملی اجرا بشه مرحله به مرحله آمدن پیش نریاز گفتنی فضال عمل رو ما ده دور کردیم دیگه همش حفظیم اول حدیثو که میگن تا ته همش مرور میشه اول یک اد که میگن تا تا همه رو میوهمی چی میخواد بگه این کتاب دیگه به ما معرفی کنی این کتاب رو دیگه دور تا تموم شد ده بارم خوندیم بولان الیاس فرمود من این کتاب رو برای اضافه شدن معلومات به شما ندادم من این کتاب رو برای اضافه شدن معمولات به شما دادم یعنی چی یعنی این کتاب عمل کرده شما بشه هر موقع به کلی این کتاب عمل کردید و این عملی تو زندگیتون پیاده شد بیاید من چیکار کنم ها یک کتاب دیگه برتون معرفی میکنه این مولوی و همش صحبتشون تکراریه همش خدمتاشون از یک حرف میزنه همش یک بیان میکنه خب از این همش همش تو چقدر عمل کردی جناب. امروز متاسفانه دامنه تلزز و ترفخ و نفسانیت انقدر وسیع شده که دین رو هم با امینا میخواییم نمازی میخواییم که کیف کنیم نه؟ می میخواییم که چی؟ کیف کنیم مصنوی میخوایم کیف کنیم مجلس مصنوی میخوایم کیف کنیم مجلس تسکیه نفسی میخوایم که چی؟ کیف کنیم آقا دیگه نمی جلسات جلسه فلانی کیف نمیده. تو بنده کیفی بنده لطفی یا عبداللطیفی آمدی خدا رو به دست بیاری یا یک حض نفس رو کیفی بکنی تمام. ما بر حض و کیف اینجا نیامدیم حالا اگر در کنار عبادت یک حضی لطفی نصیبت شد این نعمت اگر نشد ما بندهی لطفی نیستیم بندهی کیف نیستیم ما بندهی خداییم حتی بزرگان میگن عبادتی که بدون حض نفس باشه و رو نفس فشار بیاد این عبادت به اخلاص نزدیکتره و باعث تقرب بیشتر میشه گایی حظ حض ما حض روحانی نیست حز نفسانیه یکی صحبت می‌کرد میگفت تو راه نگا داشتم یک دو تا صوفی صاحب واقعیت یه خود دو سه یک از دو سه تبلیغی صحبت می‌کرد دو تا صوفی صاحب نگا نگا داشه آقا ما رو برسون فلان مجلس ذکری میخوایم بریم اونجا من میگم اینا رو سوار کردن گفتن بریم بعد زن نگا دار اینجا مغازه نگا داشتیم دو تا سیگار خریدن و سیگار رو خالی کردند چیزای دیگه تو سیگار ریختن بعد تو راه اینا رو زدن گفتن حالا توپ شدیم بریم که ان دیگه چیکار کنیم و تعبیر مولانا تو مثنوی میگه یک بنده خدایی از راه دیدی دید یک جای سری صدایی جاری جنجالیه بعد گفت چه خبره گفتن آقا زیک میکنی بعد اینا با خودشون فکر کردن دقل بودن گفتن چیکار کنین اینو کش بریم تو مثنوی میاد ان شاءالله اینو یک جوری از این بگیریم ببریم بعد گفتن ایرو بندازیم تو علقه بعد انداختن تو علقه و شروع کردن با همدیگر همطور که داشتن سر میکردن گفتن خر رفت و خر رفت و خر رفت همه با همدیگر اینا میخودن با یک ریتمی با یک آهنگی بیچاره که تازه به اینا ملحق شده و اینا میگو میگه خر رفت و خ... اینا داشتن حلالیت میطلبیدن چون رو چیکار کرده بودن برده بودن با همین طریق به زبان خودش میدادن که خر رفت صبح شد آقا دیگه فکر میکرد الان چقدر دیگه گذرونده مراحل سلوکو رو با این کیف و وجدی که دیشب داشته بعد خرم کو مگه تو خبر نداری نه خودت دیشب تو حلقه میگفتی ما فکر کردیم به تو الهام شده قبل از اینکه ما به تو بگیم خودت میگفتی رفت بعد تازه آقا فهمید چه کلاهی سرش رفته این قصه میاد انشالله تو مسنوی به امروز عالمی شده که ما بر همین تلذذها و ترفحها و برای همین خوشی های نفسانی حتی دین رو می خواهی. چرا نماز نمی کیف نمیده چرا چرا خدمت تلاوت نمی کنین قبلا کیف میداد حالا کیف نمیده جناب اینو کیف ها مهم نیست اگر کیف آمد نعمت اگر نیامد چی نشانه مردودیتی نیست تو بنده کیف نیستی تو طاعت و عبادت خودت بکن و ان شاء بعد از هر جلسه مسنوی منم این کار رو میکنم ان شما سرورا هم بکنیم خودونو یک معاک بزنیم چقدر عوض شدید چقدر تغییر کردید چقدر در ما انقلاب درونی آمد چقدر محبت الهی در ما تشدید شد چقدر ترک معصیت برامون آسان شد چقدر اتباع رسول صلی الله علیه وسلم برای ما شیرین و لذت شد اینا رو با خودمون یک محکی بزنیم یک اندازه بگیریم و پله پله پل انشالله جلو بریم و انشالله قبل از اینکه تو جلسه بیایم چون این مفاهیم عرفانی هست من گفتم اولم ادعای ندارم و فقط میخوام این نقل صحبت‌های بزرگان تو تیسفط هستیم و می‌گیم نو صحبت‌های بزرگان رو قبل از اینکه تو جلسه بیام همین ما با استغفار بیایم رو تو زنگار از روخ او پاک کن بعد از آن نور را ادراک کن اولین زنگار کدورت های غیر رو با یک استغفاری اول جلسه با یک توبهی اول جلسه اینا رو پاک کنیم تو بتونیم این نور رو انشالله ادراک بکنیم و همه ما انشاءالله بتونیم این نور رو در خودمون ایجابی بکنیم انشاءالله مثلی ادعاش با یک درد شروع میشه تو جامعه ما فریادهای مختلف یه شکوههای مختلف یه شکایتهای مختلفیه یکی شکوه و شکایت از اقتصاد که شکوه و شکایت از سیاستهای دنیا یکی شکوه و شکایت از قدرت‌ها و ابرقدرت‌های دنیا شکوه و شکایت از این از اون اما یک شکوه و شکایتی که باید از خودت بکنی نمیکنی مولانا این شکوه رو در مطرح میکنه ما دنبال اینیم که دنیا تغییر کنه اما قابل از اینیم که اگه قرار دنیا تغییر کی و تغییر کنه و اگر قرارش شکایت کنی اول باید خودت شکایت کنی این الله لا یغیر ما به قومن حتی یغیر ما به یکی بود همش میگفت من این شلو بزرگ بشم دنیا رو عوض میکنم همش ادعاش همی بود بشن ان دنیا رو عوض میکنن چه واضیه این سیاستمدارای دنیا این اقتصاد اقتصاددانهای دنیا نظام ربوی وجود آوردن سیاستمدارهای جن... دنیا جنگ دنیا جنگ قدرت به وجود آوردن نمیدونم فلان و فلان و فلان زنن دنیا رو خراب کردن اولمانی میتونن جامعه رو رهبری کنن فلان نمیتونه فلان بکنه من برسم انشالله به راس جامعه میدونم چیکار میکنم بچه بود بشاره تو تصور خودش اینطور خیال پردازی میکنی یکم بزرگتر شدی نه آقا این سادگی هم قبلا من بچه بودم تو رویای خودم این کارا رو میکردم اما حالا تو دبستان با همین دیکته معلمم و با همین مجموعه کچه که تو مدرسه من مشکل دارم ولش کن دنیا رو که نمیتونم درست کنم لقل کشور خودم اینشالله درست میکنم دبستان رفت بالا یکم به راهنمایی نمایی که رسید آقا مرایق شده و تازه میخواد به بلوغ برسه دید آقا نه چشم میتونه حفاظت کنه نه میتونه زبان رو حفاظت کنه از نامحرم نه میتونه وجود خودش رو از نامحرم حفاظت کنه خودش تو حوضه فردی خودش شکست خورده با پدر و مادر مشکل داره تو خانواده مشکل داره گفت که نکنم از پس کشورم بر بیام چیز میکنم اینشا الله تعالی میام اگر نتونستم رئیس جمهوری خوبی باشم استاندار خوبی میشم یک استاندارو که میتونم درست کنم یکم بالاتر رفت پدر شد بعد دید که آقا تا جیزیه بگیری با سود ربا جنگ خدا و رسول همه اینا رو بیارید تو زندگی تفاخور فخ ها اصلا دست تو نیست دست تو نیست اصلا زنا دیدید یک جمله دارم تو عروسی ها آقا با یک پتانسیل و قوتی میاد میگه عروسی می خوام 100 درصد مطابق حکم الله و رسول کنم سادگی حکمهای خدا نشکره فلان فلان فلان همه رو با خودش ترسیم میکنه یک مرتبه آقا میره بر میگرده میاد پنج دقیقه پنج دقیقه یک خانم با یک جمله تمام وجودش رو تخریب میکنه اون جمله میدونی چیه؟ زن یک جمله میگن میگن آقا هر کار دوست داری بکن فقط همان قد بشه آب ما نره این جمله مثل مسلس برموداس همه چیز توش جا میشه هر نوع ابتدالی، هر نوع تفاخوری، هر نوع ویلخرجی، هر نوع رقصی هر نوع رقاصی، هر نوع چی دیکه تو فکر بکنی، تا بگی آقا ماشین عروس شنید و شلان کنی. بابا بعد زشت نابروی منو نریست دشته، خوب نیست. گفتم همه اول بید. همه اول بید گفتم با نابروی من بازی نکن. خیل خوب ماشین عروس. خوب چند نفر دعوت کنیم، 10 نفر، 15 نفر عروسی ساده، فاطمه تزرعات شنید گرفت، خدیجه تلکبرا شنید گرفت، چنین, گرف، چنین گرف؟ نگفتم نابروی منو نریست. نگفتم همون اول بهت گفتم با همین جمله چی؟ بگید تمام اینا رو اجرام میکن این آقا دید که نه آقا از پس یک جمله بر نمیاد این میخواد بره خدمت شما عرض شود تو سازمان ملل با یک سری انسانهای با قول معروف پشت پرداهای سیاسی از ابرقدرت ها از بود. شده بود امام الفاسقین بد چش و نمیدونم دخترش چنین همه خانوادهم هم متلاشی هیچ که حرفش گوش نمیکنه تو هم شکست شکستخورده. آخر اومر و جمع کرد نوو نویررو و خواندان و, و وسییت آخر زندگی رو میخواد بکنه و تمام بره. بعد گفت گوش کنید بچه های من حالا این ب چه رو می هر یکی اینا ماشاءالله از دست رفته. بعد مثل یک فرمانده شکست خورده به این لشکر خودش داره نگاه میکنه گفت بیاید من یک وسیعت شما رو دارم به خدا میخواستم دنیا رو درست کنم میخواستم کشور رو درست کنم استان رو درست کنم چی رو درست کنم میخواستم خانواده رو درست کنم هیچ چی درست نشده دارم میرم اما بقیه با شما یکی از بچهاش تر بود گفت بابا کاش خودت رو درست میکرد ما از ک از او هر از او اول دنیا درسته بعد کشور ما درسته بعد استان بعد شهر بعد منطقه ما بعد فلان بعد آخر سر قرار تغییر بکنه که من ان شاء تغییر میکنم بعد جناب اگر قراره در دنیا تغییر بیاد تغییر از تو شروع میشه یک محمدالیاس تغییر کرد یک دنیا تغییر کرد یک طلبه یک زمانی یکم ساده لوتر بودینم از روستا آمده بود و نمیخوام بگم چه تایفی چه فلانی شایدم بفهمید این بیچاره تریاک دیده بود همین مواد مخدر دیده بود از روستاش اینو بلند کرده بود آورده بود نه یک زمانی به یک حکیم علما گفتن چرا شما علما تو سیاست مدار نیست چانگی به دل نمیذاره تو سر عرصهای سیاسی و اقتصادی چرا حرفی برای گفتن در مدیریت های کلان نداره این علما حکیم علما گفتن گفتن شما بچه چوپان میاد و بچه بقال میاد و بچه تریاک فروش میاد تو حوزه علمی میذارید میخواید از این ما چی بسازیم میخواید از این سیاست مدار بسازیم از این اقتصاددان بسازیم از این کی بسازیم یکی از این شخصیت‌های برجسته که در رأس یک جامعه هستند از اون خانواده‌ها اومدن بچه‌شون رو بسپرن به حوزه تا ما ازش یک شخصیت بزرگ بسازیم همینم کمال ماست که ما میایم از چوپان ها چی درست می‌کنیم علمایی درست می‌کنیم که یک شهر و یک استان و یک کشور رو دارن رهبری می‌کنه اینم کمال ماست نه ما. برای این بیچاره میگه با اون ذهنیت اعلی تو خودش آمده بود کراچی زمانی که ما کراچی درس می‌خوندیم جامعه دار کراچی رو دید 3500 تا طلبه خودش یک شهرکی شده خودش مدرسه غیر خودش یونیورسیتی خودش فلان خودش فلان خودش کالج نمیدونم خودش حتی یک زمان مفتی عبدالرحم صاحب عبد الله میفرمودن همه چیز برای شما طلبه ها همه چیز مهیا کردیم برای سکونت که شما از محوطه دار نرید بیرون همه چیز حتی قبرستان اینجا قبرستان هم هست کجا میرید بیرون از این محوطه و بیرون از این حوزه همه چیز اینجا هست هر چی کمه بگید بانک اینجا داره مدرسه اینجا داره فر همه چیز اینجا داره وسائل همه چیز هست حتی قبرستون بعد اینا رو که دیدو 3500 4000 طلبه کنار چند تا درویشی که تسبیحا به دستشون قال الله و قال رسول میگم وقتای انفرادی هم اشک دایی دارن هیچ گلوم نه با قول معروف چیزی ندارم فقط دکان تکل این حیران موندو بود با این ساختمانای مجلل و لوکس چطور درست شد بعد از اونجا میام از جامعه اشرف المدارس رو نگاه کرد سبحان الله این مدرسه به این زیبایی به این قشنگی با این همه طلبه با شاخاش حدود 8000 طلبه داره بعد جامعه ترشید میام میامد سبحان الله این حوزه و این عمارت برای همه شوبه های جامعه داره فکر میکنه یک روزی دیدم یه گوشه نشسته همین بیچاره داوته که گفتم از این طور محیط کوچیک بسته ای آمده بود گفت فلان این گفتم بله که بله برای بله من فکری ایجاد شد انشالله برم منطقه یک حوزه بزرگ میزنم خب چطور میخوای بزنی از کجا میخوای شروع کنی؟ مجبورم یک چند کیسه ای که ببرم آبیارم دم واح واح عجب فکر کلانی پیدا کردی چه حمت عالی پیدا کردی از این چیزایی در دیوار خوب باید حرف زده خوب به تو القا کرده چیزایی که بعد القا میکرده چرا؟ جناب به تعبیر خودشون میگن که آه... یا میگن بعضی مناطق میه یا تنو یا ملو یا این طرف یا این طرف زندگی دیگه به این طریقه به درد نمیخوره یا کیسه بزرگی درست کن برای پول خودت یا که تنوی و به قول معروف بهتره نمیشه اینطور یک امارت بزرگ بزنم بعد طلبه ها رو جذب کنم بکشم کسانی بیان گفتم جناب مفتی حوزه را زد اول امارت زد یا اول انسان درست کرد ما اول میخوایم ساختمان درست کنیم در که اول با چی درست کنیم؟ انسان درست کنی حضرت مولانا حکیم محمد اختر آمد اول این عمارت رو زد یا اول انسان درست کرد تو مکتب خودش حضرت مفتی رشید احمد سایب آمد اول این ساختمان های لوکس و مجلل رو زد یا اول انسان درست کرد چی درست کرد؟ اول انسان انسان درست کن او ساختمان ها خود به خود درست میشه بابایی بچهش خیلی بازیگوش بود حرفشو گوش نمیکرد بعد گرفت نقشه اطلس دنیا رو پاره پاره کرد به که پازل تقریبا تک تکه گذاشت جلویش گفت بابا جان بخاطر اینکه یکم دست به سرش کنه یکم خلاقیتش هم بیشتر بشه هم بازی فکری باشه هم دست به سر این بر داره بابا این اطلس دنیاست بچه دبستان گفت اینو برای من درست کن بیا یه جایزه داری. بعد با خودش گفت خوبه دیگه تا یک هفته راحت تام این اطلس دنیا این همه اقیانوس این همه قاره و این همه کشور و این همه حد و مرزهای جغرافیایی رو هم می‌گذاره بچه‌ی دبستانی کلی دور می‌کشه اتفاقا بچه نصف نیم ساعت بعد برگشت آمد. بابا درست چسبنده آماده. نگاه کرد سبحان الله همه چیز درسته. یک ذره اینو جابجا نشده، یک قاره، یک کشور، یک منطقه جابجا نشده. همه کنار هم دیگه اقیانوس‌ها و, رودخانه و ها و ها و ها و همه چیز سبحان الله عرش دوست بوده این بچه. ایم. چقدر خلاق، چقدر مبتکر. بابا خودت درست کردی. والله بابا خودم درست کردم. بابا تو این کشور ها از کجا می چند تا کشور پرسید چند تا قاره پرسید دی نه بچهش نمیفهمیم گفت چطور درست کردی؟ گفت بابا ما اینو درست نکردیم ما پشت اینو درست کردم. پشت اینو نگاه کردید عکسی یک انسانه. بچه چی درست کرده بود؟ انسان درست کرده بود. اعضای انسان و کناره هم گذاشته بود این طرف چی درست شده بود؟ دنیا درست شده. بود. حالا دوستان من اگر اون انسان درست بشه اون انسانی که مولانا میخواد. اون انسانی که مولانا میخواد و اون دردی که مولانا میخواد بشنو بشنا از نیچون حکایت می کند و از جدای ها شکایت می کند گوش کن درد تو شکایت تو جدای پول نیست اصلا قیمت تو پول نیست تو فکر می کنید قیمت تو پول قارونه؟ تو فکر می قیمت تو مملکت نمروده؟ تو فکر می قیمت تو این فساد و فحشای قوم لوط چه باهای اندکی چقدر خود تو داری مف مف می‌فروشی واسه برای ایمان نیامدی کل دنیا رو اگر به تو بدن اینا قیمت تو نیست نبی تو گفت اگر خورشید رو تو یک دستم ماه رو تو یک دستم بگذارید اینو قیمت نیست من برای یک آرمان هدف دیگه دارم زندگی می کنم برای کالای گران قیمت برای محل لقاع خدا برای محل دیدار خدا برای سلام خدا برای رزوان خدا برای فسقا هم هم شرابا تهورا دارم زندگی میکنم. مولانا تو مسنویش میخواد چی درست کنه؟ بیت انسان الله تعالی که این انسان کامل با این مسنوی و با, با این شرح مسنوی که کلید مسنوی است الله درست بشه الله سبحانه و تعالی اون حقیقت انسانی و کمالات انسانی رو نصیب من بوینده و همه شما سرورا بکنه از هفته آینده انشاءالله تعالی نینامه رو شروع میکنی الله توفیق عمل بده دور دی بفرس.